بسم الله الرحمن الرحیم خداوندی به اندازه مهربان نهایت بارح خدای پادشاه پاکیزه صفت صاحب قدرت مانی و صاحب حکمت را آنچه در آسمانها و آنچه در زمین با پاکی یاد میکند اوست که در میان ناخانان پیامبر را از میان خودشان برانگیخت. آیات او یعنی خدا را به ایشان می و ایشان را پاکیزه می و کتاب و حکمت را به ایشان میآموزد اگر اگرچه پیش از این واقعا در گمراهی آشکاری به سر می بردند و نیز او را برای مردمی دیگری از ایشان که هنوز به آنها ملحق نشده اند برانگیخت و او صاحب قدرت منعی و با حکمت است این از فضل خدا، به هر کی بخواهد عطا میکند. خداوند صاحب فضل بزرگ است. مثال آنانی که مکلف به احکام تورات شدند و سپس آن را مورد عمل قرار ندادند، مثال خریست که کتاب‌های بزرگی را بردارد ولی به محتوای آنها پای نبرد. بد است مثال قومی که نشانه‌های خداوند را تکذیب کردند. و خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. بگو ای کسانی که یهودی شدید اگر ادعا می کنید که شما دوستان خدا هستید نمردمی دیگر پس مرگ را آرزو کنید اگر در ادعای خیش صادق هستید ولی به خاطر اعمالی که از پیش رساده هرگز آرزوی مرگ را نمی کنند و خداوند به حال ظالمان داناتر است بگو مرگی که از آن می گریزید ضرور دامنگیری شماست سپس با سوی کسی که پنهان و آشکار را می داند برگردانیده می و او شما را به کنه اعمال شما آگاه می سازد ای مؤمنان چون برای نماز در روز جمعه آزان داده شود به سوی ذکر خدا یعنی نماز بشتابید و خرید و فروش را بگذارید این کار برای شما بهتر است اگر بدانید تو چون نماز ادا شد در زمین پراغنده شوید و از فضل خدا بجوید خدا را بسیار یاد کنید تا باشد که رستگار شوید انگامی که تجارت یا سرگرمی را بیبینند سوی آن می شتابند و تو را استاده می گذارند بگو آنچه نزد خداونده است از سرگرمی و از تجارت بهتر است و خداوند بهترین روزی دهندگان است